بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين و اله وصحبه اما بعد ما درس کردیم بحث المونر کردیم خصوصا بحث ایمان در لغت بحث رو باز کردیم و گفتیم که ایمان در لغت مترادف با تصدیق نیست بلکه ایمان شامل فرا تصدیق است هیچ وقت ایمان صد در صد و کامل با تصدیق نیست چرا گفتیم چون ایمان به امور غیبی اطلاق میشه ولی تصدیق نه میگیم مثلا اگر ابر رو دیدیم میگیم باور کردیم و تصدیق کردیم که ابر هست و میگیم آمن تو ایمان آوردیم که ابر در آسمون هست. هیچ وقت گفته نمیشه که ایمان آوردیم به ابر در آسمون هست یعنی میگیم که پیامبر به پیامبران ایمان داریم اون امور غیبی پیش میگیم ایمان اون چیزی که باعث باور داشته باشیم از امور غیبی بهش میگیم ایمان و همچنین گفتیم که ایمان خودش متعدی نمیشه ولی که تصدیق خودش متعدی میشه میگیم آمنت للهو نمیگیم آمنتو ولی تصدیق میگیم صدقتو و غیر از این گفتیم که شنو سومی گفتیم که ایمان ذش فنقیضش میشه چی؟ کفر و تصدیق تصدیق میشه تصدیق و درو خب این خلاصه فروقی که بین ایمان و تصدیق هست و اینکه ایمان تنها تصدیق نیست بلکه تصدیق همراه به اعتقاد به امور غیبی ایمان به امور غیبی تصدیق به امور غیبی خب بعد بحث ایمان در اصلاح شد گفتیم که ایمان قول به زبانه گفتن به زبان عمل جواره و اعتقاد به قلبه یا به عبارت دیگه قول قرب عمل قد و قول جواره و عمل جواره و برای هر کدوم هم دلیل گفتیم درسته؟ و برای هر کدوم از اینا دلیل گفتیم میمونه الان موضوع عبد میشه بحث الانمون این ایمانه که ما در شرع داریم این ایمانی که را بحثش میشه خود این ایمان وقتی که به طور مطلق میاد بحث ایمان میشه شاید این ایمان مقصد از اون اصل ایمان باشه اون اصلی که ما با اون وارد اسلام بیشیم به اطلاق میشه مسلمان یک لفت یک مرتبه دیگری داریم کمال واجبه خود همین ایمان مقصد از اون کمال واجبه یک بحث دیگه کمال مستحب فرا‌تر از کمال ایمان کمال مستحب حالا ما ببینیم کمال مستحب چیه کمال واجب چیه و اصل ایمان چیه و نقاط کمال واجب چیه حالا هر کدوم از این مباحث هر کدوم از اینها صبح شد صبح واجب ثم من ابوابنا انه يعرفون قفت توراث سفنا من ابوابنا فمنهم ظالم لنفسه ان آيه را گفتیم خب بس این آیه ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه میشه چی فمنهم ظالم لنفسه میشه نقصانه كمال واجب ومنهم مقتصد میشه اونها يگه كمال واجب رو انجام دادن ومنهم سابق بالخيرات كذلك كمال واجب اصل ایمان ودارن لیک پیشقدم شدن و ثبقت گرفتن و بر اونها عبزودن و مستحباتم انجام دادند در نتیجه کمال مستحب رو انجام دادن. خب این خلاصه بحث این آیه. الان موضوع جدیدی که ما داریم بحث ایمان و اسلام. چه ارتباطی بین این دو تا هست؟ در شرف. شکل درش نیست که وقتی ایمان و اسلام به طور مفرد بیا در قرآن و سنت هر دو تا یکدیگر را در بر گرن اگر بشه بحث مؤمن مسلمان هم شامل بشه اگر گفته بشه مسلمان مؤمن هم شامل شاملش مثلا گفته بشه که مسلمان اوصاف شینی نبات چینی کاری بکنه مؤمن هم باید همونچنان کاری رو انجام بده فرقی نداره بین مسلمان و مؤمن لیکن این دو تا لفظ اگر با هم در یک جا جمع بشن این در یک سیاق بیان در یک جمله بیان فرق می‌کنه ولی اگر مفردا بیاد هر دو تا رو در بر میگیرن. اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع. مثل عبد المسكين و فقير. مسكين و فقير مثلا فقیر در لغت کسی که چیزی نداره و مسکین کسی که یه کمی چیزی داره. وقتی گفته میشه مطلقاً فقیر مسکین و در بر میگیره. و همشینی مسکین و مسکین مسکین تا در بر میگیره. دیگه نگا در یک جمله بیاد. گفته بشه اولین صدقهی که میدید باید به فقرها بدید و بعد به مساکین فرکر نکرد کرد پس فقیر در این جمله شد کسی که چیزی نداره و مسکین کسی که کمی چیزی داره لفظ ایمان و اسلام پس به چه معنا میاد اگر در یک جمله قرار بگیره اسلام اعمال ظاهری و ایمان اعمال باطنی حالا عدله اولا حدیث جبری قال من ایمان قال ان تؤمن بالله ثم كذا و قال ما الاسلام شهادت وقال تقيم الصلاة و تا آخر اعمال ظاهر این اولين دليل بار ان اگر اندو تلبس بهم جان بشن معانش مختلف خب الله مثلها بر بار ان مثلا دارم قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى ابراهيم قولوا آمنا فدر آخر بي ونحن له مسلمون یک مثال Von dere tenkt sett som vi ser under fryser i gett et aut Onion Men vi就可以 anionen om token For å havet oss من vi var et som var i var av av uter Av á deuts er For den Becca fyllt oss så var vi bettermite Dansaveser Det. Nå hvor kommer بیرون رو بردیم کسانی که در آن روستا بودن. من المؤمنین. مؤمنین را بیرون رو فما وجد نغیر بیت من المسلمین. یک خونه مسلمان بیشتر ندیدیم. مسلمان کیان اینجا در این آیه؟ و مؤمنان چه کسانی هستن؟ فا اخرج نمنکه نفیه من المؤمنین. مؤمنین رو خارش کرده. کیه مؤمنین؟ لوت دو تا دخترش همسر شامل هست خیر خیل خاطر همینی که میگه چی؟ فما وجدت غیر بیتی من المسلمی خونه مسلمان بیشتر ندیدیم جز مسلمان ها به حساب میاد میمت همسر لوت یا نه؟ جز مسلمان ها میمت منافق اگر در نظر بگرید ظاهرش مسلمانه مسلمان, مسلمان نیست یک شخص منافق دیدید میگید مسلمان یا نمیگید بگی مسلمان در بات کافر بسیار همینی که چی خداوند در جاهای دیگه از قرآن میگه که چی دو تا همسران کافر که در دی عدد پیامبران ما بودن که به لود با همسر لود درست این دوتا تا کافره چرا اونجا حکم کف میده و اینجا میگه و فما وجهت نغیر بیت من المسلمین از مسلمانان ها یک خونه بیشتر ندیدین پس خود به خود همسللوت هم شاملی مسلمانان هست چرا اینجا میگه مسلمان چرا اونجا میگه کافر چون اینجا حکم برحث بشیه برحث به ظاهرش ظاهرش مسلمان ولی باطنش کافره به خاطر همین در جه و... من المسلمین از مسلمانان یک نفر نگفت yegna fanat bayt muslimen na goft khayr bayt muslimen na goft aw ghayr bayt li muslimen na goft khone yek musliman na goft goft min al muslimi muslimi jam'e ya mufrad jam' o fatana hamin doxtaranash o khodeso hamserash dar bar digere hala misal bazah taram hast qalat al a'rab o amanna bas inja dar khodoon بहां सर। و همشین قالت الاعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. قالت الاعراب آمنا، گفتم ما ایمان آوردیم. بدونها بو ایمان نه ایوردن، مسلمان شدن. مسلمان شدن یعنی چی؟ یعنی اصل ایمان رو دارن، لیکن مشکل دارن دیگه، در کمال واجبشون و در مسائل دیگه مشکل دارن. بس چون کمال واجب را به طور احسن انجام ندادن خدا من گفت که چی؟ قول و اصلم نا گفت که بگید ما مسلمونی در هم داریم از اون احادیثی که هست در بخاری و مسلم از حدیث سعد که میگوید گفتم به رسول الله صلی اللہ علیه و سلم وقتی که غنایم را در خیبر توضیح میکرد و فخش میکرد گفتم که بكثان ادا دي بكثان ديگر ندادي و ولم تعطي فلانا وهو مؤمن بفلان شخص ندادي و مؤمنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوا مسلمن اي مسلمانه يعني از باب تایید استفهام میگه اوا مسلم دروسي بعد میگه سعد میگه این رسول الله این جمعه را چند بار تکرار کردن اوه مسلم به فلان شخص دادی فلان شخص ندادی اینم مؤمنه میگه نه مسلمان پسیه در یک سیاق مسلمان و مؤمن اومده مسلمان و مؤمن اومده معناشون فرق میکنه مؤمن میشه کسی که اعمال باطنی را به نحوه احسن انجام داده و مسلمان کسی که اعمال ظاهری رو انجام داده و لازمه این کسی که اعمال باطن را انجام میده اعمال ظاهرم داشته باشه خب حالا مبحث دیگری که ما داریم این مبحث مبحث فهم احادیثه مباحث وعیدی که در احادیث اومده ما نگاه بکنیم احادیثی که در باب تهدید وعید اومده سبب شده که خیلی ها برداشت منفی بکنن برداشت منفی استباب شده که خیلی ها را تکبیر بکنن در نتیجه خروج روی حکم خوندریزی و کشتن و مسئله دیگه رفت بوده در میان مسلمان ها مسلمان بیا دیگه مسلمان دیگه رو بباشد آیا مرتکس سال اینجاست؟ فهد در رد خوارد که نصوص وعید نصوص دیگه نفی ایمان از یک مؤمن اومده که خوارد اشتباه فهمیدن آنها ما میخوام بررسی که آیا این عدله واقعا دلیل و مدرکی برای خوارج هست یا نه؟ آیا واقعا کسی گناه کبیرهی انجام بده کافر میشه یا نه؟ کسی کسی رو بکشه یا زنه انجام بده یا دزدی بکنه و مسئولی دیگه؟ شک درش نیست که وقتی که ما بحث مرتکب کبیره رو میکنیم شخصی رو میخوام مورد بردرتی قرار بدیم که استحلال نکرده باشه یعنی نگفته باشه که مشروب حلاله. یا بگه بی یعنی یعنی نماز کسی نماز دخونه کارش درسته. نماز واجب نیست. ما در این در روی باره این شخص صحبت نمی کنیم. کسی که محرم یا, ح... یا واجبی را از خود استاقد بکنه و حلال... ح... حرامی را حلال بکنه یا حلال یا حرام بکنه شکی در تکفیر و کافر بودن این شخص داریم. ما اگر مشکل در داریم که میدونه چیز گناهه و انجام بده از جمله نوصوسی که ما داریم از جمله حدیثی که ما داریم لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن نفی ایمان لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن این در یک شخصی که زنا می در حالی که می زنا نمی در حالی که مؤمن هست یعنی یعنی کسی که زنا می در حال زناش ایمان نداره نفی ایمان شده یا فل لا ی من حدكمم حتى يحب اخه ما يحب نفسه لا منو او این خصس که زیاد است در خودشه لا ی من ح پس شما ایمان نبی آیا در اینجا نفس ع ایمان یامال ایمان كمامال ایمان لا من حدكمم حتى يحببل اخي ما يحب نفسه آیا أي خارج ا که برای خودشون پس دیدن به دیگران ندن کافر بوده ن خودودشون آیا کسی از مفرمان ها چینی چیزی رو فهمیدن؟ خیر. پس با باشناخت اون مطلب، مطلب مباحث ایمان، مباحث کمال ایمان و کمال مستحب، میتونیم این احادیث را درک بکنیم و خوب بفهمیم. خب، شاید یک شخص از شما دلیل و مذرک بخواد بر اینکه بحث در اینجا کمال ایمانه. چه دلیل داریم در اینکه این مبحث در بحث نفی ایمان در اینجا در این احادیث؟ بحث النفي كمال النفي اصل نفي اسليم ما دليل من القران اينه اين دليل كليمون ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ايه زنا شرك ايه خاصه من شيء كه انحصار يا منحصر كده نشيك المهم يخون براي خود و به ديگران شرک خیر ان الله لا یغفر یشرک به خداوند شرک رو نمیامورده و دون شرک, شرک نباشه و یغفر ما دون ذالک لمن شرک نباشه رو خداوند برای کسی که بخواست می باشه حالا به طور تفصیل بگم این مبوا هست بگم مثال هایی زده میشه از خود قرآنم بازم بیان میشه یعنی مباست شاید بازترم بشه در برز مطاره از جمع نکسوسی که ما داریم ای که داریم درش بحث بحت فعید اومده و تحسید اومده بحت عدم دخول به بهشت لا يطول الجنة قابل لا يطول الجنة نمام و لا عاد سخنچین و کسی که حقوق والدن رو انجام میده وارد بهشت نمیشه یا قاطع الرحیم مورد بهشت بحث رامون می گذر به نصوص وعید الان بحث ایمانه این ایمان چه موقع از شخص برداشته میشه؟ آیا این نصوصی که الان در ایمان اومده نصوصی که در برای مثلا فلان شخص مؤمن نیست منظور این مؤمن نیست الان خیلی هم باز نمیشه شه الان بحث ایمانه خبارش بد فهمیدن ای ایمان خبارش فهمیدن این ایمان هر وقت نفر بشه در, در نصوص هر وقت نفر شد یا آدم ورود به بهشت شد همه اینها کافرند مؤمن نیست نافی ایمانه شده آیا هست یا نیست الان این بحث ما اینجاست تا آیا این احادیث دلیل و مدرک برای اینها هست یا نیست خب نفی دخول بهشت چطور ما باید پاسخ بدیم لا يدخل الجنه امام ولا اخر خب با چطور پاسخ بدیم گناه کبیره از شکی دلش نیست علما چند وجه دارد وجه اول که مقصد از میگن که در جمع این بین حادیث او ید این که میگن نفی در این حادیث نفی مطلت رو یعنی عنی اینکه کاملا بر اون شب بهش حرام, حرام بشه نیست بلکه مدتی بهش برش حرامست مستقیما وارد بهشت نخواهد شد و بعد از اینکه عذابش رو دید وارد بهشت این جمع اول پس جمع اول این که چی جزء اشخاصی نخواهد شد که مستقیما وارد بهش خواهند شد نفی نفی دخول اولی است دخول در اولین مرحله نه نفی وارد شدن بهشت اصل وارد شدن بهش دومن و ما در جمع بین ببینین این احادیث چنین گفتن که نفی این بهش, بهش بهشت بهشت معینیه لا يدخل الجنه یک جنته خاص یک بهشت خاصیه و استدلال کردن به حدیث لا يدخل حضیره القدس سکیر ولا عاق ولا منان پس در این حدیث مقید شده این جنت باید اون حدیثی که به طور مطلق در وصف بهشت به این احاد در اونجا داریم لا یدخل الجنت اینجا داریم لا یدخل حضیره القدس حضیره در بهشته حضیره القدس یک در در بهشته سکیر فاتكني میشه متن میکنه عزیز ولا عاق ولا منى بده حدیث صحيح ابن خزيمه حديث دوم این حدیث حدیث صاحب در صحيح ابن خزيمه اون دو قبل که لا يدخل حضيره القدس لا يدخل حضيره والضاد حضيره القدس سكير ولا عاق ولا منان پس این بهشت بهشت مشخصیه، معینیه حالا اگر ما نگاه بکنیم ما در این حدیث نگاه بکنیم مثلا در بعد شروحات میبینیم که در شب پیرامون این حادیث چنین اومده؟ که این نفیه برمیگرده به مشیت خدابد لا یت رو جننده درست خدان گفته و لیکن برمیگرده به مشیت خداون برمیگردونن به اون آیه ان الله لا یوش کبه ح فر ما دو نظر کله مننگشه لیکن این جنبندی و این پاسخ در قبال این احادیث درست نیست چرا ماقع نگاه بکنیم نفی این بهش این به اشتی که در این حادیث داریم کلا زرگ گفتی در جوهی مقید اومده در برای حقوق بندگانه نمامه حق کسی را مال کرده عاقص حتی والدن بدی کرده درسته؟ نمیشه گفت که اینجا هم برمیگرده مشیط خداوند اگر خداوند خواست اونها را میبخشه شرک خدا میبخشه اما دونه شرک را خداوند برای هر کسی که به خواست میبخشه در چه صدتی؟ در حق خودش باشه اما در حق دیگران هم میبخش خدا خیر باید حق گرفته بشه به خاطر همین این نفت روی اصلش باقی یا برای اولین بار و بهله وارد بهشت نخواهد شد یا اینکه از بهشت خاصی محروم باقی موند سلام باید لایت سالا جنمان کاندی قدیم خاله در الکبر و بحر و حم انت حق خدود والله قسمته دوم خب من نسكي ما دارين من غشنا فليس مننا ليس مننا من نظم الحدود وشق الجيوب ازماني نسكي تقلب بكونا غش بكونا ازماني نسكي كسي ك از سرش بزنه داد و بیداد بکنه و پیراهنش رو پارا بکنه آیا اینجا هم نفی از ما نبودن از مسلمان ها نبودن بازم بحث کاملا مؤمن نبودنه یا اینکه که جز کسانه که کمال واجبش و ناقصه از ما نیستن یعنی یعنی از ما مؤمنان همچون رسول الله و صحابه از ما مؤمنان حقیقی نیستن نه اینکه که اصلا به طور کلی مؤمن نیستن نه گفت که مسلمان نیستن گفت که مؤمن نیستن گفتیم در نوزد شرعی جاهای از ایمان به معنای اصل ایمان میاد نفی اصل ایمان اگر نفی بشه و جاهای نفی کمال واجب که اکثر هم بحث كمال الواجب خف هذا بحث دعنا طور مثلا في الحديث دارين ك اگر زنانی مثلا متبرج و دیدینید که لباس پوشیدن مثل که لباس نپوشیدن فلعنوا هن فإن هن ملعنات يلعن في الكمر عشرة فلان وفلان وفلان وفلان إلا أي لازم إلا أنك فإن بحث مسلماني. أن شخ مؤمن ومسلمان خير وقال إنك خدر خود الحديث فلعنوا هن فإن هن ملعنات بحث مسلمانه إنها يميان محشد خدر خود الحديث يسول الله بيان ميكنا الزنان مؤمن كساليمان سوار زین هایی شدن که تشبیه به زین همین ماشین میگه زین مثل مثلش رو سرکت سروج که میان کنار مساجد تیاده میشن وقت وقت مسلمانانه لیکن این لعن این دلیل بر کفرشان نیست مثل اون صحابه ای که از یک بیگه تمسایش بعد اومد و سراس دا مشورت کرد بعد وسایلش رو بیرون از خونه بعد هر یک از اصحاب رد میشیدن میگفتن سؤال میکرد چرا این کارو رو کردی؟ میگفتن چی؟ همسایان من رو اذیت کرده میگفتن چی؟ خدا لعنتش بکنه لعن, لعن یک شخص معین الله اختلاف درش شیخ حالبانی میگه که اگر یک شخص اینچین این, این کارهای رو انجام بده یک شخص متبرج رو دیدی اجازه دارید بگه خدا لعنتش بکنه لیکن اگر حکومت اتنایی باشه اگر فردانت فردان نگیرند و زندونت نندادن و آشوی وفا نکنی اما الان در روزن دیگه امروزه نمیشه گفت ولی ولیکن لعن خاص جایزه میتونی این اشخاص مثلا این زن یا مثلا چخص که همیشه خمر و مشروب میخونه همسوشش اذیت بکنه میکنه، میتونی لعنش بکنی اون چیزهایی که در شهر آمده که لعنت براشون جایزه شیخ مون شیخ برای رحله میگه نه میگه المؤمن ليس بطعان ولا لاعن مؤمن لعن مؤمن تعنی بتکفیرت نگونه میگه لعن مشخص لازمه این که اون شخص تکفیر بشه بلکه من نمیدونم فکر نکنم که از این نصو فهمیده بشه لازمه لعن فکر نکنم لازمه اش تکفیره یعنی چی وقتی ما میگیم خدا لعنتش بکنه یعنی چی یعنی از رحمتش طرد بشکنه یا مثلا لازمه شه خدا لعنتش بکنه از رحمته تولم محروم بساز حالا یه شخصی به خودش میگه چرا سوال بکنه خب بچه رو دای هدایت نکنه یعنی اون شخصی یه دختر مثلا متبرجه رو می‌بینیم فلانی رو می‌بینیم چرا بگیم خدا هدایتش بکنه چرا بگیم خدا لعنتش بکنه ما اگر در حکمت حدیث قدس داشتش نگاه بکنیم حالا این خارج از درک باشه است ما اگر خود اصل این حدیث نگاه بکنیم میبینیم که ورود این حدیث سبب داشته علت داشته رسولان میخوان یه چی بیره ما برسولان و آنم بحث تربیت و تعدیبه که اولا ما به طرف این جهنمیان نریم اون اشکاس را ملعون بداریم و به خودمون هم بگیم که اونها ملعونن اگر نمیخوای میترسیم بگه خدا لعنتش بکنه ای خدا زنان متبراش رو لعنت بکنه حد درقل کاری که میتونی بکنی یک فایده به خودت برمیگرده که به طرف اونها کشونده نشید جهنمیان دومن فایده دیگه داره فایده به فرزندانت به همسرت فردا همسرت میشنه بکرد خدا این زن بی حجاب رو لعنت بکنه دخترت میشنه میگه هرزدت میاد اینچین این, می این کاری رو انجام بده هیچ وقت، اگر دوستش شنید، دیگه روش میشه که همسرش یا دخترش بی حجاب بیرون بیاد و تو هم ببینی نگاهش بکنی، روش نمیشه چون میدونه که تو بغض این عشقات داری پس یک فایده تربوی داره، تعدیبی داره در ماها ما را تربیت میکنه وقتی که انسان متنفر بشه از این این عشقات و اعلان بکنه تنفرش هم در خودش به هم در عثفیونش تاثیر می گذاره خب این بحث لعن اولا خلاصه این نیست رئیس بله سبحان ما گفتیم که این لعن این لعن یک لعنه خاصیه که برمیگرده به گناه خود یعنی اون گناه خواستش یعنی اون گناهی که سبب این همه فساد شده اون گناهش خدا اون رو نبخشه آیا لازمه لن این که یه تابیخ خواستی بشه یا حق نا حق اینجا حق خدا که نیست حق ما این دختر که متبرج بیرون اومده موهاشو بیرون بیرون ورده حق منو و شما را پایمال کرده فکر ما رو شما رو مشغول کرده دل ما رو خراب کرده دل ما رو سیاه کرده درسته خدابان گذشت میکنه حق بند گانه ح رو حق بندگان همش خدابان ببخشه پس کی تعادل و حل بشه بین بندگان به خاطر همینه که بحث لعگره اومده ح که حق رو پای ما رو کرده دل ما رو خراب کرده آلا ما این دل خرابمون رو باید درستش بکنیم چطور؟ بدو کرده. لعل انه هنا فإنه هنا مراد. ولی گفتم لعن خطا به معیار قرار ندی. از اختلاف بریم بیرون. ببین خدا لعنت بکنه متبرزات. خدا لعنت بکنه به حجاب‌ها. خدا لعنت بکنه کسی که موضوع حجابش نیست. عام بیاری. خاص نگویید. خب خلاص این نصوص بعید. اینه که گناه‌ها میتونن کف باشن و میتونن کف نباشن مثل مثلا مسخره و این جور مسائل کفره کسان از اسمه خارج میشه مسخره به دین الان میاد باستر خواهد شد از گناه ها هم هست که کف نیست کسی که گناه کبیره انجام بده کافر نیست خلاصه یالا این مباحث مرتقب کبیره هم کافر نیست مرتقب کبیره ایمانش ناقص میشه به اندازه ای گناهش هر چقدر گناهش بزرگتر باشه ایمانش بیشتر نا. کم بیشه و این که کسی که گناه کبیر انجام بده خودشو متعرض به رقوبت خداوند کرده شاید خداوند او را ببخشه و شاید خداوند او را نبخشه الان دلایل اینکه که مرتکب کبیر کافر نیست دلایل اینکه که مرتکب کبیر کافر نیست و در جهنم خالد مخلط باقی نخواهد نیست دلیل اول که مرتکب کبیر کافر نیست و این صاعی سچانی من المؤمنی نقصتلو ف اصلشو بینه همه قتل یکی کسی دیگر رو بکشه گناه کبیره هست یا نیست؟ قتل گناه کبیره هست خب پس خداوند میگه و این قایفتان من المؤمنین اختسل فاصلحوا بینهم و این قایفتان من المؤمنین اختسل اختال فکوشن هم دیگر کفر کبیره است و کبیرینی کبیره کبیره است لیکن خداوند گفت من المؤمنین ایمان دارن اصل ایمان مقصدی اصل ایمان رو دارن هر چن کی چی کمال و واجبشون ناقصه چون گناه کبیره انجام دهند گفتیم با گناهان کبیره کمال واجبمون کم بیشه دوتر نقصان کمال واجب بیشیم پس این یک دلیل تریشیه بر این که گناه کبیره کسی گناه کبیره انجام بده کافر نید و از جمع دلائل فمنعفی له من اخیه شیعون فاتبعون بالمعروف و ادعون الیهی بی احسان اینجا دباره کیه؟ برادر, محت... برادر برادر مقتول يا بسوره فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف بادائه اليه باحسان ده انجا بحث اخوهت دينه قاتل برادر كيه اولياء مقتول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداهن اله و احسان خداون اسمشو گذاشت برادر قاتل اسمش گذاشت من اخیهی از برادرش درسته؟ برادر یکی خطاب میشه برادر مومن بحث بحث مومنانه از جمعه عدلل است حدیث که بخاری مسلم روایت بیکنند عزا عبدالله که کنیش حمار بود Kim��은 pure Kristian fra ossifir rester nå? Joynåd Kristian. Han er litt til å spille ham. Ingen requireder he não врatt fram at delt, så laестноandre den gøring av som det er som har gode ellens nainhos, l butica av dagen. ide av dem. For Simple har چرا؟ فإنه يحب الله ورسوله. فإنه يحب الله چون اصل ایمان رو داره. اصل ایمان رو داره. دو تا مرتكبانه کبیره شده. و رسول الله گفتن که چی؟ يحب الله. اگر کافر بود میگفت يحب الله ورسوله. آیا نه هیچ می‌کرد که نعدش نکنه؟ خیر. بس اینجا این شخص مشروب خورد، گناه کبیره مرتکب شد. این حالت هم در رد بوده که خوارش اونایی که مرتکب کبیره اشخاص خو فکر کردم خب بعضم احادیث زیاده یعنی بعض جمله احادیث حدیث مشهور که رسول الله سوال کردن از اصحاب مسلم المفلس؟ قالوا المفلس عندنا من لا دین له ولا درهم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي إن المفلس من أمتي از أمتي من مفلس کیه من یجو یوم باعمالك الجبال وجاء ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فقدت اخذ من سيئاتهم فجعلت عليه ثم كب في النار شخصييه فشده لك يا صديقه كثير زدت كثيرك كشته غنایه من امتی ان المفلسه من امتی از امتم من پس این شخص گناهکار کسی گناه کبیره بر انجام داده رسول الله جزکی قرار دادن جز امتش همچنین از جمله ادله ای که شیخ الاسلام مفتی استدلال میکنه خیلی حدیث مستمیه در بحث عذر به جهل میاد در بحث عذر به جهل میاد که یک اون شخصی که الاميه ابن عباس الذي اسرف عن نفسه في السير البخاري حديث ابن عباس كي ميگه ادمت تو فاهرقوني كي اگر مردمه آتش بديد يك قسمتم را در آسمان يك قسمتم را در زمين يك قسم ديگر در لو قدر علي ربي لا عذابا مع معذبه احد من العالمين كي الا خدابا بتونه مراه جنب عذابه كثيراً عذاب یک چیزی را اون چنان عذاب نداده به مثل ما قال مثل ما قال فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه منه وأمر البر أن يجمع ما فيه منه فتمثل قائما خداوند دستور داد که از خوشی به عذاب و هوا اون قسمتای بدنش که درشت جنگ جنب کنند جمع شدند و شخص که خداوند بعد خداوند بهش میفرمایند و میگوین ما حملک چیزی که چنین کار رو انجام بدی قال خشیتك يا رب فغفر له اوکی خداوند ترسییدم و خداوند او را بخشید حالا این شخص که اسراف کرده بود در گناهان غیر از اون بیچاره شرکی هم شده بود خداوند او را بخشید الا چرا بخشید در باب وزره جهاد می میاد که این شخص چطور و چرا خداوند او را بخشید الا غیر از این واقعی که این گناهان خداوند انجام داده ولی با این وجود خودبند او را بهش می کنه. آیا کافر بارده بهش میشه خیر. و آیات و احادیت زیادی هم هست بحث دوست که دستش خد بشه. چرا خودبند حدود گذاشت؟ چرا یه مؤمن باید شلق داده بشه؟ چرا نمیدونم دست دوست خد بشه؟ فلان بشه این همه مباحث برمیگرده به این که چی؟ صاحب گناه کبیر کافر نیست. و سریع خیلی نالی که نمو قبلا هم گفتی این الله علیه قرآن یا ويفرحون ذلك لمن يشاء خف تو ان شاء الله كافيه خلصت شديد ديجا دي ان شاء الله بحث زياده في ايمان ونقصان ايمان والاختلافه ك بين المرجئه هست واهل السنه ان شاء الله ميدون براي بحث و درس هاي اند ان شاء الله كزي سوالي چي ميدارم